باران به یخ، یخ به برف و برف به باران تبدیل شد و ما هنوز افتان و خیزان در راه بودیم هنگام غروب در کنار جویباری در پناه درختان چادر زدیم حتی در زیر درختان انبو هم زمین خیز بود و قطرات باران به طور مداوم روی ما می ریخت اما به هر حال بهتر از ادامه راهپیمایی در چنان هوایی بود نمی چه مسافتی را پیموده ایم تنها چیزی که می این بود که خسته گرسنه و فرسوده شده ایم. لباس ما را به کمک سه آتش کوچک که افروخته بودیم خوش کردیم و به نوبت کنسروهای خود را گرم کردیم و بعد هم چیزی شبیه قهوه دم کردیم. گرمای آتش کنسرو تاس کباب و قهوه بدن یخ کرده ما را گرم کرد و روحیه امیدواری را به ما برگرداند. پس از تلاشی بیسمر برای پیدا کردن موقعیتمان در روی نقشه به این نتیجه رسیدیم که راه خود را گم کرده ایم. اما فردا هم روز خدا بود با این تصمیم به چادرهای خود برگشتیم و در حالی که پتوها را به خود پیچیده بودیم داخل کیسه خوابهای خود به خواب عمیقی فرو رفتیم چه خواب دلچسبی صبح که از خواب بیدار شدم حس کردم سنگ نکتیزی به پشتم فرو میرود تمام شب را بی آنکه متوجه شده باشم روی آن خوابیده بودم روز بعد با ریزش برف و باران آغاز شد پس از خوردن صبحانه بر سر اینکه بمانیم یا به راه خود ادامه دهیم بحث و مشاجره گرفت و سرانجام به دو گروه تقسیم شدیم شارکوف، من و پنج نفر دیگر جزو گروهی بودیم که میخواستیم به راه خود ادامه دهیم به نظر بقیه راهپیمایی در آن هوا دیوانگی محض بود از آنجا که هر دو گروه بر تصمیم خود استوار بود از یکدیگر جدا شدیم ما هفت نفر بودیم که به سوی تپه راه افتادیم و از آنجا راهی را پیش گرفتیم که پس از مدتی ما را به جاده اصلی عریزی هدایت کرد. از دور دستها صدایی شنیده میشد که به گوشمان بسیار آشنا بود. با وجود روشنایی روز جاده پر ها، کامیون ها، گاری اسبی و سربازان پیاده نظام بود روی سنگ بزرگی نشستیم و به سربازانی که در حال عبور با کنجکاوی به ما نگاه میکردند چشم دوختیم. جیره غذایی ما از اینان، قطعه سوسیز و جرعه قهوه سرد تشکیل می شد. شالکوف گفت، هر طور شده باید سواری یکی از این خود بشیم. زیر لب گفتم، امتحانش مجانیه. لوتر گفت، با توجه به پرواز جابوها سوار شدن در روز خطر مرگ داره. شالکوف گفت، اول باید از خودمون بپرسیم که چیکار کار می بکنیم. با نیشخن گفتم وظیفه حکم میکنه که بقیه ای بچه ها را پیدا کنیم شارکوف سرش را به علامت تکان داد و گفت: « بله اما در این مورد چه کاری از ما ساخته است؟ بزار رو راستر حرف بزنیم همه ای ما آرزو داریم به خونه همون برگردیم. پس چرا نباید در این را سعی کنیم؟ راستش من هم از زمانی که واگلسان را ترک کردیم به همین مسئله فکر میکردم. اما ترجیح میدادم کس دیگری آن را مطرح کند. چون به عنوان فرمانده چنین این پیشنهادی خالی از خطر نبود. چه کسی از آینده خبر داشت؟ لوتر گفت به نظر من اول باید از این سرواز بپرسیم که در کجا هستیم. بعد از اونا بخوایم ما رو به راه آهن یا وسیله نقلیه دیگهی برسونن. تا ببینیم بعد چی پیش میاد. من به آسمان نگاه کردم. زیرا هشدار قبلی لوتر در مورد فعالیت هوایی دشمن مرا به فکر واداشته بود. اما ابرها پایین و متراکم بودند و گرچه باران بند آمده بود ولی شک داشتم که هواپیماها بتوانند در چنین هوایی به پرواز درآیند. لوتر و شالکوف از سربازها درباره موقعیت محل سوالاتی کردند ولی از قرار معلوم اطلاعات آنها هم بیشتر از ما نبود. ستونی از تانک های آلمانی در حال عبور بود. مسلسل‌ها رو به آسمان نشان روی شده بود. درهای فولادی و دریچه باز بودند و خدمه روی برجک تانک نشسته بودند. شالکوف با صدای بلند از آنها خواست که ما را سوار کنند. آنها خندیدند و با علامت دست گفتند به پرید بالا. کل پشتی های من را به سرعت درآوردیم و در حالی که در کنار تانک میدویدیم آنها را روی تانک پرت کردیم و به هر ترتیب خودمان هم سوار شدیم. طبق معمول بارانی از سوئال درباره سن وونیفرم ما باریدن گرفت. و ما هم مثل همیشه پاسخهای یکسان خود را تحویل آنها دادیم. یکی از آنها که کنار ما ضد هوایی نشسته بود گفت پس شما سفر بسیار خوبی در پیش دارید. کل ما را برایشان تعریف کردیم و آنها در پشت برجک تانک جای راحتی برای ما تدارک دیدند و با شراب و غذا از ما پذیرایی کردند. ما در وسط یک ستون ده تایی از تانکهای تایگر قرار داشتیم که نفربرهای پیاده نظام و خودروهای دار به دنبال آن بودند. به راستی چه کسی و چگونه بنزین آنها ها را می کرد. مسلسل چی تانک از من پرسید آیا با این جدیدترین سلاح پیروزی آشنایی داری؟ گفتم نه. گفت خوب گوش کن. این سلاح جدید یک تانک 60 تنی که راحت از سرازیری تپه پایین میره اما تو سربالایی باید پنجاه نفر حلش بدن. <تصفيق> همه زدیم زیر خنده. من پرسیدم فکر میکنی ما پیروز میشیم. روبه من کرد و صورت آفتاب سوخته را به طرفم خم کرد. و در حالی که با دست های سنگینش شانه را نوازش میداد تکرار کرد. پیروزی آنها حدود شش یا هفت سال در لحسان فرانسه روسیه، آفریقا در عملیات مختلف شرکت کرده بودند و حالا به غرب باز می‌گشتند. وارد دهکده‌ای به نام استفلن شدیم که مثل سایر نقاط منطقه غرب بی به یک اردوگاه نظامی نبود. چند اسیر انگلیسی در کنار جاده می می‌کردند. وقتی از کنار آنها می‌گذشتیم، خندیدند و دستشان را به علامت پیروزی بلند کردند که البته در آن موقع معنی آن را نمی‌دانستم. در استفلن، توقف نکردیم و راه خود را به طرف دهکده بعدی ادامه دادیم. در طول راه، گاه به گاه فوشش ابر از هم می است و تکه های از آسمان آبی نمایان میشد. افسری که فرمانده گردان تانک بود گفت، امیدوارم هوا خیلی صاف نشه. هیچ کدام نگرانی خاصی نداشتیم و تقریبا همه چرت می به غیر از صدای عبور و مرور وسایت نقلیه و فریاد سربازان، همه چیز آرام بود. همچنان که در طول جاده درکت می کردیم، گهگاه به سربازانی برمیخوردیم خوردیم در ایستگاه راه آهن زاپت دیده بودم. تشویش و نگرانی از چهرهشان می در مورد خود میتوانم بگویم که می توانستم به عقب تانک بروم و تا ابد آنجا بمانم. گذاشتن پر از خاطراتی بود که از یادآوری آن نفرت داشتم و پیش رویم، پردگاهی شرف احساس می کردم که قادر به اندازه گیری آن نبودم اما هنوز به آن ورته نرسیده بودم بنابراین از اینکه روی تانک نشسته بودم و چرت می زدم خوشحال بودم از روبرو شدن با آینده وحشت داشتم تا اینکه ناگهان فریادی مرا به خدا ورد پناه بگیرید جابوها دارن میان بیدرنگ از تانک پایین بریدم و خودم را داخل نزدیکترین گودال انداختم. جاده پر از سربازانی بود که سراسیمه میدویدند و خود را روی زمین می‌انداختند. ناگهان سه هواپیمای تاندرولت در حالی که با مسلسلهایشان تیر اندازی تیراندازی می می‌کردند، به طرف ما شیرجه رفتند. ها با مسلسلهای زده هوایشان آنها را دنبال کردند، اما بیفایده بود. پایین جاده در سمت راست من، یک نفر بر به آتش کشیده شد. موقعی که هواپیماها برای حمله بعدی دور شدند، به طرف تانک نگاه کردم. مسلسلچی دیوان وار شلیک می کرد بقیه افراد پشت تانک سنگر گرفته بودند و هر بار که هواپیما ها روی ما شیرجه میرففتند روی زمین دراز می کشیدند بین من و تایگر یک نفر روی زمین دراز کشیده بود برای بار دوم که نگاه کردم یکی از بچه ها بود دست راستش را بلند کرده بود و سعی میکرد خودش را به گودال ما بکشاند من خواستم کمکش کنم اما هواپیما ها دوباره درست بالای سر ما شیرجه زدند سرم را دیدم و اگرچه دیگر نمی توانستم او را ببینم اما صدایش را می شنیدم که با ناله و فریاد درخواست کمک می کرد. فریادش بلند و بلندتر می شد تا اینکه صدای گوش خراش شلیک که فریادهای او را در هم شکست. دوباره نگاهش کردم. هنوز در همانجا بود. به فکرم رسید که او را به طرف پناهگاه بکشم. اما وحشت امان نمی داد. هر طور بود از بلند شدم و سراسیمه به طرف او تویدم صدای قرهش هواپیماها فضا را پر کرده بود فقط یکی دومت متر با او فاصله داشتم هینی با چشمایی که التماس در آنها موج میزد به من خیره شد و دستهایش را که به سفیدی آج بود به طرف من دراز کرد قلبم از وحشت در سینه می‌تپید قرهش بیامان هواپیماها و صدای رگبار مسلسلا و وحشت مرگ مانعم شد به طرف گودال شیر جرفتم. در حالی که جاده زیر رگبار مسلسل ها و گلوله های دو سانتی یکی از هواپیماها قرار داشت هواپیماهای دیگر حمله شدیدتری را به مواضع ما آغاز کرده بودند هنوز وقتی با خود خلوت میکنم به یاد هینی میفتم او را به یاد میآم اما نه به صورت پسری که روزگاری هم, کلاسی هم بود بلکه در قالب چشمانی که با ناامیدی کمک میترد و دست هایی که مظلومانه به سوی من دراز شده است. خسارات وارد چندان سنگین نبود یک نفر بر مورد حسابت گلوله قرار گرفته بود و چند خودروی دیگر نیز آتش گرفته بودند مأمورین بهداری با شتاب به طرف محلی که به قرار اطلاع در آنجا چند سرباز کشته و مجروح شده بودند در حرکت بودند هینی هنوز زنده بود گلولهٔ مسلسل پشت او را دریده بود و صورتش مثل گچ سفید بود دو نفر سرباز بهداری با خون سردی و خیلی عادی فرمش را پاره کردند و با آن زخم او را پانسمان و بان پیچی کردند. لازم بود که هر چه زودتر او را به بیمارستان برسانیم. نزدیکترین بیمارستان به طوری که می گفتند در لامرسدورف بود. برزنت و پتوها را در قسمتی از تانک روی هم پهن کردیم و هینی را با دقت تمام روی آن خواباندیم و راه افتادیم. همه در یک سکوت سنگینی کنار او نشسته بودیم. گهگاه لرزهای بدن هینی را فرا می گرفت لبهایش را به دندان میگزید و اشک در چشمهایش جمع میشد اما در همان حال به ما لبخند میزد گاهی هم زیر لب چیزی میگفت چیزی در مورد مادرش که البته چندان مفهوم نبود حرفهای او مرا نگران کرد زیرا تمام کسانی را که تا آن لحظه در حال مرگ دیده بودم هرگز زن شوهر برادر یا خواهر خود را صدا نمیکردند مادرشان را میخواستند باران و برف سبکی دوباره شروع به باریدن کرد. سطح لغزنده جاده به شکل آینه ی کدری درآمد که در ضمن حرکت تصویر ما را در خودمان عکس می‌کرد. مسلسلچی دست به دست مقداری کنیاک برای هینی فرستاد. شالکوف سر هینی را بلند کرد و چند قطره کنیاک به گلوی او ریخت. صرفی شدیدی به هینی دست داد. اما وقتی دوباره آرامش خود را به دست آورد، لبهای سفید و آری از حیاتش به لبخندی از روی حق شناسی شکفت. صورتش مثل گچ سفید شده و دانه های عرق روی پیشانیش نشسته بود. برای لحظه دست مرا محکم در دستش فشرد و سپس بیهرکت شد. چهره ماه هم مانند او مرطوب بود و قطرههایی از باران و اشک به آرامی روی گونه من سرازیر بود. ما با هم چندان سمیمی نبودیم. اگرچه برای همدیگر بیش از یک همکلاسی به شمار میرفتیم. در هر حال، او یکی از هم رزمان ما بود. درست در همان حال که برای هینی احساس تأسف کردیم، برای خودمان هم نگران بودیم. و هنگامی که شش نفری به درد و رنج نفر هفتم چش دوخته بودیم، در سیمای یکدیگر تصویری از خودمان دیدیم. سرنوشت همه ما به یکدیگر گره خورده بود. به همین خاطر عشقهایی که از سر فرو فرو ریخت، به ترس و وحشت نیز آمیخته بود. همه ما بین دوازده تا چهارده ساله بودیم. سن و سالی که به نظر یک پسر جوان، سن و ساله کمی نیست. اما در برابر چهره بیروه هینی، ناگهان به کوتاهی زندگی که شتابان گذشته بود و به آیندهی که هنوز چهره ننموده بود، پی بردیم. هنوز هم دست مرا آزادانه در دست داشت و لبهای سفیدش به خنده باز بود بعد چشمهایش را به ما دوخت چشمهایش ما را نگاه نمی کرد بلکه به ما خیره شده بود در همان زمان از این واقعیت که آنچه می دیدیم نه چهرهی خندان بلکه پوشش مرگ بود یک خوردیم تکانش دادیم صدایش کردیم دو سه نفری بلندش کردیم اما سرش به جلو خم شد و به روی سینه افتاد ما نگاهی به او کرد و نظر ما را تایید کرد. او مرده بود. معمور بهداری را صدا کردم. او هم پس از ای گفت کارش تمومه. خارج از دهکده کوچکی در یک فضای باز توقف کردیم. صدفان گفت تا ساعت ده شب در اینجا استراحت می کنیم. سپس با استفاده از تاریکی شب به لامرزدورف خواهیم رفت. جسد را در برزنت پیچیدیم، از تانک پایین آوردیم و روی زمین گذاشتیم. دهکده از چند خانه، کلیسایی کوچک با گورستانی در کنار آن تشکیل می شد. برای اجازه دفنهینی به دفتر کلیسا که جنب گورستان بود رفتیم. کشیش با تعجب و ناباوری ما را برانداز کرد و گفت شما یک مش بچه از من می چه بکنم؟ زود باشید بروید یک آدم درست حسابی با خودتان بیاورید. سربازم را به نزدش بردیم با کمک و تایید او کشیش جای کوچکی را در گوشه غربی گورستان زیر درخت قان به ما نشان داد و گفت خیلی متاسفم گورکن ما برتش اعزام شده و ناچار کندن قبر با خود شماست پشت کلیسا را نشان داد و گفت وسایل کار در انبار است ما هم وسایل را برداشتیم و مشغول قبرکنی شدیم باران خاک را نرم کرده بود و با هر بیل مقداری خاک نرم و آهکی را کنار میریختیم بیل گنار طوری صدا کرد که انگار به سنگ خورده است. وقتی خاک ها را به دقت کنار زد، شیعی سفید رنگ از لابلای خاک نمایان شد. گنار خم شد و آن را بیرون کشید. جمجمه بود. تکه تکه اجزای اسکلت را بیرون آوردیم و آنها را کنار قبر گذاشتیم. گمان نمیکنم بیان احساسی که از این واقعه داشتم لزومی داشته باشد. هیچ کس حرف نمیزد. همه به یک اندازه ناراحت بودیم در عمق 1.5 متری از کندن باز ایستادیم لوتر برای دیدن کشیش رفت و ما هم برگشتیم تا جسد را بیاوریم هینی را از پوشش برزنتی درآوردیم شالکوف جیب هایش را وارسی کرد و محتویات آن را در بسته کوچکی ریخت چشم های هینی هنوز باز بود و مثل شیشه میدرخشید هنوز خنده روی لپهایش دیده میشد با چند شاخه محکم تابوتی ساختیم و جسد را روی آن قرار دادیم و به سمت گورستان راه افتادیم عدهای زیادی از سربازان در پشت سر ما حرکت میکردند به آهستگی از میان خیابانهای دهکده گذشتیم چند زن هم به ما پیوستند کشیش در لباس سیاه بلندش ولوتر که صلیبی با خود حمل میکرد در جلوی در گورستان منتظر ما بودند لوتر در جلوی جمعیت و کشیش دنبال جنازه حرکت می کردند. هنگامی که کنار قبر رسیدیم جنازه را روی زمین گذاشتیم چیز زیادی از سخنرانی کشیش به یاد ندارم احتمالا نیمی از عمرش را با همین حرفها گذرانده بود اما جمله آخرش را فراموش نمیکنم. پروردگارا با صبحانی این مصیبت ها کسانی که باعث مرگ این پسر جوان شده اند اف بفرما. در حالی که با چشمان اشکبار جسد هینی را درون گور میگذاشتیم، سربازان کلاه سر برداشته با صدای خشن گرفته اما گرم و صمیمی خود سرود هزنگیز روزگاری هم رز می داشتم را خواندند. پس از پایان مراسم، بقایای اسکلت را به درون گودال برگرداندیم و روی آن را با خاک پوشاندیم. از شاخه هایی که با آن تابوت بود درست کرده بودیم، سلیبی ساختیم و کلا خوده اینی را چون تاج افتخار روی گور قرار دادیم. گور پسرک یونیفرم پوش. کشیش ما را برای صرف چای به دفتر کلیسا دعوت کرد. پیرزن خدمتکاری که به علت چین و چروک فراوان ای مشخص داشت، با های بزرگ خوراک سبزی و پنجان های بزرگ چای داغ و تکه‌های بزرگ کیک خانگی از ما پذیرایی کرد. سپس کشیش ما را در جریان اخبار گذاشت. شهرهای ما بمباران شده بود. روزها از طرف شرق پیش می‌آمدند و متفقین فقط چند کیلومتر با ما فاصله داشتند. خبرای از این است. پس از شنیدن اخبار، صحبت به خاطرات خودمان کشیده شد. هر کدام از بچه ها داستان های عجیب و تکان تعریف کردند. ما پسر بچه هایی بودیم که ناگهان ظرف چند هفته چنان به سرعت رشد کرده بودیم که گویی یک باره از نوجوانی به بزرگسالی رسیده ایم. سرانجام شارکوف از کشیش خواهش کرد که از سر لطف نامه نامهای به پدر و مادر هینی بنویسد و آنها را از مرک او با خبر کند و وسایل شخصی او را هم برایشان بفرستد. کشیش این درخواست را پذیرفت و شارکوف برای آوردن بسته وسایل شخصی هینی رفت. ما در سندلی هایی که فوقالعاده راحت بودند چرت می‌زدیم. هنگام عصر، موقع خداحافظی، کشیش دعای خیرش را بدرقه راه ما کرد و خدمتکار پیر به هر کدام از ما بسته قضا داد. با یادآوری این وقایه اغلب چانین می‌اندیشم که شاید در آن موقع ما از احساسات انسانی بی بهره بودیم. هنگامی که با سنگدلی تکه های اسکلت را با نکه چکمه های خود به درون قبر ریختیم، و با اشتیاق به خوردن غذا مشغول شدیم و فنجان بزرگ چای را نوشیدیم شباهت به یک جانور وحشی نبودیم از طرف دیگر همین سنگدلی و بی احساسی بود که جان ما را نجات داد خوابیدن پس از مراسم خاک سفاری هم رزمی که فقط چند ساعت پیش گشته شده بود اعصابی قوی میخواست هرچند اعصابی برای ما باقی نمانده بود کار ما به مرحله رسیده بود که یک واقعه هر چه میخواست باشد تنها چند لحظه احساسات ما را به خود جلب می کرد گرچه هرگز فراموش نمی شد و در زمیر نیمه هوشیار ما باقی می ماند تا که زمان مناسب فرار زد طوفان حوادث فرو نشیند و شرایطی فراهم شود تا دوباره چنین خاطری زنده شود در مورد من این مرحله چند سالی طول کشید و پس از آن بود که خاطرها با وضوح تمام در ذهنم زنده شد و این کتاب حاصل آن است اگر از بدین منوال نبود، اگر نگرش ما به مسائل مانند افراد عادی در شرایط طبیعی بود، شاید هرگز نمیتوانستیم زنده بمانیم، و اگر زنده میماندیم، دیگر از نظر روانی افرادی کاملا سالم و طبیعی نبودیم.